بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در بررسی صفات الهی یه مقدماتی رو کردیم خود این مقدمات اصل در جای خودش اهمیت داره منطقه نسبت به این مسئله که ما میخوایم بگیم مقدمه است همه اینها مقدمه شد برای ورود در اسماء الهی و صفات الهی که ما صفات الهی رو توضیح بدیم بیان کردیم که از بین همه صفات الهی ما چار پنجتاش رو ذکر میکنیم تا برسیم به بحث عدل خدا چون اصل بحث ما این هستند میخواییم به عدل برسیم من دعا خود فهم عدل مبتنی است که ما علم خدا رو بشناسیم قدرت خدا رو بشناسیم اراده خدا رو بشناسیم که در ذهنش مشیت و اینها را هم صحبت بکنیم که وقتی راجع به عدل دلیم صحبت بکنیم دیگه این جه جهلی وجود نداشته باشه نکته این رو که در جلسات گذاشته ارز کردم این بود که ما اگر بخواهیم راجع به خدا صحبت بکنیم ما وقتی میگیم الله باید شش ویژگی راجع به اون الله در ذهنمون باشه ویژگی اول این است که واجب الوجود است ویژگی دومش این است که معلول نیست ویژگی سومش این است که علت نخستین ویژگی چهارمش این است که حقیقتی است مستقل ویژگی پنجمش این بود که کامل مطلقه و ویژگی شیشمش این بود که موجودی است بی نهایت اون اللهی رو که ما میپرستیم تا خصوصیت باید داشته باشه استقلالش رو توضیح دادیم بی نهایت بودنش رو توضیح دادیم کمال مطلقش رو توضیح دادیم علت نخستین بودنش و معلول نبودنش و واجبه به بودنش رو. خب این الله دارای یک صفاتی است اولین صفتی رو که ما بخواهیم بحث کنیم صفت علم خداست خب این صفات وقتی بخوایم بحث کنیم اول باید بگیم که در خدا هست یک بعد بگیم که به چه معنایی هست دو بس دو مرتبه بحث داره دلیل و برهان برای اثبات اون صفت کمالی و دوم که اون صفت کمالی در خدا هم به چه معناییه <تصفيق> یاد دارم که باز در جلسه گذشته است کردم که می‌خویم دلیل اثبات صفات کمالی خدا رو که مطرح بکنیم اول دو تا دلیل رو بیان میکنیم که اینا عمومی است عمومی است یعنی چی یعنی به واسطه این دو دلیل تمام کمالات الهی اثبات میشه نسبت به عموم صفات الهی مثبت اثبات کننده است و همین دلیل یعنی دو تا دلیل عدله عمومی اثبات کمالات خداونده که بعد اون مقدمه رو گفتیم اون مقدمه خودش در واقعی یک بحث کاملش حالا اون دو دلیل عمومی از مجموعه بحث هایی که در شناخ شناسی زدیم یعنی بخوام توضیحاتی که اونجا گفتم رو بیان بکنم ولی هی اشاره بکنم که آقا این بحث ها در شناسی مطرح شده شما بدونید اون چی که اونجا گوزنش بیربط نبوده ما بخواستیم وقتی رو پر کنیم ما میخواستیم که یک منبعی رو ایجاد بکنیم بعد هی ارجاع بدیم ببین اونجا اینو گفتیم اونجا اینو گفتیم و حالا اگر کسی هم مفصل ترش رو بخواد باید برگرده به همونجا ما به همین میزانی که الان بیان می دلیل اول بر اثبات تمام صفات کمالی حضرت حق چرا خداوند همه کمالات را دارد؟ دلیل اولش از به ادله عموم دلیل ما یه خط یه خط توضیح داره چرا خدا همه کمالات را دارد؟ چون که واجب الوجود به واجب من جمی الجهات جهات اینو تو کتابای های فلسفی میگن و میگن تموم شد دیگه چرا خدا باید همه باشه؟ چون واجب الوجود به ذاته بنابراین واجب من جمی ال جهات حالا اینو توضیحش بدین توضیح این چیه؟ سابقا عرض کردیم ما گفتیم ذات اقدس اله واجب الوجود است. به ذات یعنی ذاتش واجب الوجود است. واجب الوجود است یعنی چی؟ یعنی حقیقتی است که ذاتن خود به خود ضروری که موجود باشد. ضروری است که موجود باشد. و محال است که معدوم باشد یک همچین حقیقتی رو اگر پیدا کردید بدون اینکه علتی وجود داشته باشد اقتضا بکند که باید باشه یک و اینکه نمی نمیتواند نباشد دو یا همچین حقیقت رو میگن واجبونه از یعنی اصلا حقتشون وقتی که دیم نباشه دام, دام علتش باشه از واج وقتی ما میگیم الله واجب الوجود به ذات است یعنی از ناحیه ذات خودش اقتضا دارد که باید باشد و نمیشود که نباشد یک چنین حقیقتی است برای تحققش نیاز به علت نداره اینو بهش میگم واجب الوجود خب چنین حقیقتی که در مرتبه ذاتش واجب الوجوده باید در مرتبه صفاتش هم واجب الوجود باشد چرا چرا باید در مرتبه صفاتش هم واجب الوجود باشد یعنی اینکه صفاتش هم ضروری الوجود هستند خود به خود و محال است که معدوم بشن چرا باید این اتفاق بیفته علتش مهمه برای اینکه اگر اگه صفات خدا، اگه صفات خدا واجب الوجود نباشد یعنی باید در مرتبه تحقق چی داشته باشن؟ علت داشته باشن. خب علتش کیه؟ سوال میکنیم. علتش چی؟ یا علتش کیه؟ اگه بگید علتی غیر از واجب الوجوده؟ به عدلی که توحید رو اثبات کردیم غیر از الله کسی دیگه ای وجود نداره پس غیر خدا نمیتونه چیزی علت صفات باشه درسته؟ باید خود خدا علت صفات باشه اینو چرا میگیم خود خدا باید علت صفات باشه؟ برای این که خسم ما نپذیروفته که صفات واجب الوجود یعنی در تعققشون نیاز به علت نداره میگیم حالا که شما میگید در مقام صفات واجب الوجود نیست نیاز به علت واجب الوجود نیست پس باید نیاز به علت داشت قول علت کیه؟ غیر از ذات که چیزی نیست به خاطر عدله چی؟ توحید اثبات کردیم که خدا هیچ شریکی در کنار خودش نداره این دو خود ذات میتونه علت باشه یا نمیتونه علت باشه خود ذات خداوند خود ذات الله علت برای تحقق کمالات باشه چه نمیشه به دو دلیل نمیشه یک دلیل اول دلیل اول این که ذاتی که فاقد کمال باشد معتل کمال نمیتونه باشه شما میگید ذات خدا علت ضرورت صفات خودشه در حالی که خودش اون صفات رو نداره دلیل اول دلیل دوم ذاتی که ذاتی که کمالات رو ندارد یک ذات چیه؟ ناقص ذات ناقص واجب وجود نمیتونه باشه به همین سادگی رضا ما در زبان کلام و در زبان فلسفه وقتی میخواییم راجب به صفات خدا صحبت کنیم میگیم صفات خداوند اینه عین ذاتشی یعنی چی؟ یعنی اینه ذاتش باجب بود وجوده یعنی در محرز تحققش نیاز به علت نداره به نظر همیت هفه ساده بود بله یک خود تأمل میخواد یک خود تفکر میخواد ولی حرف من ساده زدم خدا بکیده ایم یه مرتبه هم اقاله از رو بخونم خب و... وقتی میگیم واجب الوجود به زاد، واجب من جمی ال یعنی ذاتاً علت نداره از همه جهاتم هم نباید علت داشته باشه مرادم از جهات چیه؟ صفاتشه اونجام نباد علت داشته باشه یعنی اونجام چی باد باشه واجب الوجود باد باشه خیلی خوبه یعنی خداوند از نظر ذاتش واجب الوجود است یعنی حقیقتی است که ذاتن خود به خود ضروری است که موجود باشد و معال است که معدوم باشد یعنی برای تحققش علتی ندارد نه اینکه علت نداره بلکه نمیتواند علت داشته باشه چطور نمیتونه علت داشته باشه توی بحث برهان امکان و وجود گفتیم اگه به علت نخستیم بر نگردیم هیچ چیزی تحقق پیدا نمیکنه ما باید به یه جایی برگردیم که علت همه چیز هست ولی خودش علت چون اگه خودش بخواد علت داشته باشه تسرسل پیدا میشه شود تسلسل هم رسل سره علل چیا؟ بانتره این بر میگرده اونجا مرتبط کنید بحث رو چلین حقیقتی که در مرتبه ذات واجب الوجود است باید در مرتبه صفاتش نیز واجب الوجود باشد یعنی صفات اون ضروری الوجود هستند و برای تحققشون نیاز به علتی ندارند که اگر علت داشته باشند سوال این است این علت چیست یا این علت کیست؟ خدا از ذاتش واجب الوجود ولی خب رو نمیپذیدت واجب الوجود وقتی نمیپذیدت واجب الوجود یعنی حتما چی میخواد؟ علت بخواد, بخواد کیه؟ غیر از ذات واجب الوجود حقیقت دیگری موجود نیست به دلیل عد... به اسم جهت رعایت عدلیجی توحید که ما ثابت کردیم در مورد حق تعالی هم که گفتیم صفات خدا عین چی هستش؟ ذاتشه. وقتی ذاتش علت نداره، صفاتش هم قطعاً علت نداره. خب ذاتش که علت نداره، صفاتش هم که نمیتونه علت داشته باشه. چرا؟ چون غیر از ذات کسی دیگه این نیست که بخواد داره عنایت بکنه. حالا خود ذات میتونه انایت بکنه یا نمیتونه بکنه؟ به دو دلیل نمیتونه. چرا؟ چون ذاتی که خودش کمالات رو نداره میتونه به موجودی کمال بده؟ نمیتونه. ببینید استاد اگر میخواد به شما سوادی رو انتقال بده، میتونه آدم بی سواد باشه یا نمیتونه باشه؟ باید خودش سواد با خودش فیزیک بلد باشه تا فیزیک بگه. باید خودش ریاضی بلد باشه تا خودش ریاضی بگه. اگه اگه ریاضی بلد نباشه چی بخواد انتقال بده؟ لذا در زبان فلسفه میگن معتش عنایت کننده یک چیزی نمیتواند فاقد و باشه نمیتواند اون شی رو نداشته باشه کسی که میخواد علم را ایجاد کند باید علم داشته باشه خب شما که میگید این ذات خودش فاقده غیر از این ذات که چیزی نیست خودش اگر فاقد باشد میشه مقتشه فاقدش چه؟ پس نمیتونه باشه. حال بگذلیم ملت ایران حسدشون اینه که عموماً سر درس اساتی میشه که ثواد نداره. <تصفيق> نه حسدشونه. یا یه عده آدم ها میشن یه حرف های مردم ها به با او چهچه میکنم. حالا اینا چیه خدا ما نفهمیدیم. خدا من نفهمیدم. بعد مثلا باید یه چیزی بشه حتما وزارت اطلاعات ورود پیدا بکنه اون افراد رو جمعا جور بکنه خود مردم گفت همه آقای که اخیران گرفتنش که بله آقایی اون من هم گفتن که ما چارده تا بودیم تو که اومدیم ما شدیم این آدم در تهران ما <تصفح> درس از کلاس درس شروع درس آقای مجتبای تهرانی بود آیت الله بود و درست خونده بود نمیدونم این چه تحلیلیه چجوری میشه این مردم تیک زد تو کجا کوجا... چه... تو چه سرفصلی میشه تیک زد سخته خیلی کار سختی خب در مورد حقت آلام که گفتیم صفات عین ذات هستند. چون توان ذات را ولو به لحظت عاری از کمالات دانست از این جهت که نقص پیش میاد و نقص در واجب وجود راه نداره دوم چیزی که پیش میامد چی بود؟ اینکه آقا اگر از صفات رو بخواد ذات خود ذات ایجاد بکنه لازم میاد که فاقد الکمال مقتل کمال باشه یعنی امکان نداره عقلم تمام شو. این استداله اول این هر کمالی که وجود دارد ذات عقدس اله واجد آن کمال هست به صورت عینیت یعنی ذاتش عین اون کمال غیریتی وجود نداره بنابراین وقتی ذاتش واجب الوجود است صفاتش هم واجب الوجود هستند این معنا روشن شد انشاءالله انشاءالله از این جهت که نقص پیش میاد یعنی خداوند محتاج به کمالات است ولی آن را ندارد حالا میخواهد آن را کسب کند چه کسی آن را اعتام میکند چیز دیگر یا کس دیگری که وجود ندارد پس صفات این ذات هستند و الا اتصاف صفات به ذات نیازمند علت می بود و احتیاج به علت نقصه و اینکه غیر از واجب الوجود هستم که چیزی دیگری وجود ندارد که بخواد اون علت را اعتاق کنه بنابراین صفات این زاد هستن همچنان که زاد واجب الوجود است. یعنی باید باشد و نمیشود نباشد صفات هم باید باشد و نمیشود اگه نباشد به زبانهای مختلف من هم میبارد تو گفتم واجب الوجود به زاد واجب من جمیل جهاد یک دلیل عمومی چرا خدا علم دارد؟ به همین دلیل چرا خدا قدرت دارد؟ به همین دلیل چرا خدا <تص> اراده دارد به همین دلیل چرا خدا حیات دارد به همین دلیل چرا خدا هزار و یک اسمش به دست ما رسیده به همین دلیل به همین دلیل عمومی که ارز کردیم دلیل دوم در سلسله بحث های علت و معلول این امر مسلم است که علت باید واجد تمام کمالات معلول خود باشد به نهوه اکمل یعنی برتر و اشد یعنی شدیدتر هم کاملترش رو داشته باشه هم شدیدترش رو داشته باشه در سلسله بحث های علت و معلول این امر مسلم است که علت باید تمام کمالات معلول خود را به و اکمل و برتر داشته باشد تا بتواند تواند معلولی صاحب کمال ایجاد بکنه اگه خودش نداشته باشه نمیتواند معلولی رو ایجاد بکنه که اون صفت رو داره چون معتش شی فاقد نمیش اگر علت کمالات معلول را اصلا نداشته باشد یا ضعیفتر داشته باشد ترجیح مرجوه بر راجه خدا علت وجود ابن سیناست ابن سینا با سواد فلسفه داره اما خدا اون فلسفه رو نداره ولی علت وجودی علم ابن سینا هم هست. خب خدایی که این علم را ندارد چگونه می تواند عنایت بکند؟ اگه میگیم علت پس باید این صفت رو به نوعی اکمل داشته باشه و به نوعی برتر داشته باشند. باید داشته باشه. و الله اس می چرا بزنیم علت خاص خب دومین روزالم ترجیح مرجوه بر راجع یعنی کسی که صفتی را ندارد اسمش را علت او وقت این علت در مقام وجود قبل از اوس در مقام در تشکیکی قبل از معلولش باید قبل از معلولش تصور بشه او وقت کسی رو شما قبل حساب کردید که خصوصیت مابعد رو ندارد اگر علت کمالات معلول را اصلا نداشته باشد یا ضعیفتر داشته باشد ترجیح مرجو بر راجع عقلالم محالیام چنین چیزی که ما مرجو رو را بر راجح چیکار بکنیم ترجیح بدیم یا اینکه علت کمالات معلول را دارند ولی در حد همونه یعنی هر چقدر این علم داره اونم داره با هم برابره 50-50 پنج که در این صورت نامیدن علت به چنین موجودی که کمالات معلول را در حد معلول دارد ترجیح بلا مرجه یعنی دوتا موجودی هستن که هر کدومشون پنجاه درصد ظرفیت علم دارن ما اسمی نگوشتیم علت اسمی نگوشتیم معلول خب اسمی که بیزاری اسم که فقط این علت باید قبل از معلول باشه تقدم و وجودی پیدا میکنه کسی که تقدم و وجودی پیدا میکنه قوت وجودی باید داشته باشه در حالی که از نظر صفت با اون یکی چیه؟ باادله. چرا بس ما بگیم این اونو میگیم چرا میگیم الله علت باشه اون معلولی رو که صاحب علم بگیم مثلا فسق علت باشه؟ چی میشه ترجیح به مرجحه. هر دوشم به عقب چیه؟ باطله وقتی شما میگید الله در واقع علت علم در معلولاته باید علم اینو که در اون معلولات داره بیشتر باشه این در مربی گری هم همینطوره مربی اگر بخواد یک تیم رو اداره کنه دانشش باید چی باشه؟ اگه نباشه خب اصلا نبیتونه مربی باشه نمیتونه پرورشی رو ایجاد بکنه با دانش برابر یا دانش کمتر پرورش ایجاد پیدا نمیشون بنابراین نمیشه اسمشو بزنید مربی حالا خدا اینکه میخواد کمالات بده باید کمالاتش بیشتر از دیگران باشه و نه فقط کمتر نباشد بلکه در حد هم نبات باشه بلکه بچه باشه بیشتر باشه. یا اینکه علت کمالات یا اینکه علت کمالات معلول را دارد ولی در حد همان معلول که در این صورت نامیدن علت به چنین موجودی که کمالات معلول را در حد معلول دارد ترجیح به ناممرجه هست. و این نیز عقلن محال است پس باید علت حقیقتی باشد که همه کمالات معلول را به نهوه اکمن و اشد و اشرف دارا باشند. حالا این سویژگی چیه تو بحثای منطقی میگن اکمن یعنی کاملتر اشد یعنی زودتر چون قوت بد داشته باشه اشرف یعنی بدون راهی که اون رفته باشه هر دوشون از یه جا نگرفته مثلا اگر مخلوقات، علم، قدرت، حکمت و سایر صفات را دارن علتی که این مخلوق را با چنین خصوصیتی خلق کرده باید آن اوصاف را کاملتر داشته باشد زودتر داشته باشد تا بتواند معلولی را با چنین خصوصیتی چکار بکنه؟ خلق بکنه و آن را شدیدتر داشته باشد تا علت بودنش حفظ بشه شدیدتر به خاطر اینکه قوت وجودی داشته باشه قوت وجودی به خاطر اینکه علت همیشه قبل از معلوله این دو تا دلیل, دلیل چون علت باید معلول را خلق کند و معلول واجد کمالات علتش باید اون کمالات را به نحو اکمل داشته باشه اگه مساوی باشد میشه ترجیح به لامرجعه اگه کمتر باشد میشه ترجیح مرجو هر دوش باطله بنابراین باید چی باشه اکمل اشرف و اشد داشته باشد به این دو دلیل عمومی خداوند واجد همه کمالات هست هر کمالی رو که شما در عالم خلقت تصور می‌کنید مخلوق خداست خدا وقتی علتش میشه پس باید واجدش باشد و نه به اندازش یا کمتر بلکه بیشتر اگر بیشتر بودن رو نپذیریم دو تا اشغال پیش میاد هر دو به اشغال عقلی است یکی ترجیح بلا مرجح در جایی که برابر باشه یکی ترجیح مرجوح بر راجه جایی که کمتر باشه این دو تا دلیل عمومی است این تا دلیل رو یه خود دقت بکنید تمام صفات کمالی حضرت حق اثبات میشه اینکه میگم یه خود دقیقت بکنید چون میدانم که زبان فلسفه به هر صورت سنگینه و همین دلیل که فلسفه خیلی مشتری نداره ولی خب شما ها الحمدلله اسقاط کردید که مشتریش هستید میرید در منزل پیاده بیکنید بینید رسید ده بار میخورید حبس میشی فکر میکنید. و متوجه میشید به شدن و متوجه شدن زمین تا اصلا فاصله است اولش یاد بگیدید که من چی گفتم دومش بیفهمید که من چی گفتم این مهمه ما اون رو میخواییم و الحمدالله تا اونجا همین اتفاق افتاده چیزی چیز سکتی هم نیست خب بریم سراغ صفات الهی اولین صفت ای که میخوان همچیز کن علم خداست راجبه علم خدا بخواهم صحبت بکنیم در مورد علم بشر وقتی صحبت میکنین یکی دانشمندان فیزیک هستی ای اینجوری صحبت کرده راجب علم بشر اونایی که بوتشون علمه به چی آدم من در سابق تصور میکردم که دانش روزی همه چیز را کشف خواهد نمون یعنی به واسطه علم ما هیچ مجهولی نخواهیم داشت ولی هرقدر بیشتر تحصیل کردم و همه چیز را از اتم تا کهکشان و از میکروب تا انسان از نظر گذراندم متوجه شدم که هنوز خیلی از چیزها مجهول است دانش بشر شگفتانگیزه از ذره تا کهکشان از میکروب تا انسان تحلیل کرده بسیاری مواردو اما میگه هنوز خیلی چیزا مشغوله هنوز خیلی چیزا مشغوله این اعتراف یک دانشبنده دانشمند دیگری که زیاد از اسنقب میکنن منم به همدیگه اسمش اسمشو بگم ولی خب مجبورم بگم حالا از این دانشمند استیی هم خیلی یاد میکنن جواب های من منم بخوام اسمشو نگم ولی خب مجبورم بگم این وقتی عظام ای رو کشف کرد حیرت آور بود دیگه کارش دیگه خیلی بود. بعد از کشف خودش در مقابل خبرنگاران جمله جالبی گفت خیلی جالب گفت خودش گفت با چنین کشف حیرت انگیز نسبت آنچه که میدانم به آنچه که نمیدانم به این نردبان کوچک چندپلئی به سان این نردبان کوچک چندپلئی است به فضای لایتناهی جهان تو کتاب کونش یک نردبون داشته که میرفته رو اون نردبون مثلا دستش به اون قفصهای بالاتر که نمیرسیده کتابا رو مرتب کنه تمیز کنه چه کار سختی هم هست انصافه یعنی آدم سه بار خانه تکانی داشته باشه در یک ماه بهتر از آن است که یک سال، در یک سال مثلا فصمه یک بار بخواد کتابونه رو بهش بره اونای که دارن میفهمد کار سختیه میگه من کشفم حیرت انگیزه تسخیر اتم اما حالا فهمیدم اون چیزی که میدونم نسبت به اون که نمیدونم به سان نردبان پله ایست چند پله است که در مقابل فضای لایتناهی و من از نردبان علم چند پله بیشتر بالا نرفتم و مرغ اندیشه من جز چند متر بیش آوج نگرفته است اون کشف حیرت انگیز بیگو من چند پرلی بیش بالا نفتن چند مترم فکرم بیشتر حرکت نکرده در فضای لایتناهی این حرف دانشمندانه این عالم هست نسبت به علم بشر علم بشر که چنین عظمتی رو داره ولی چنین اعترافی هم پشتش داره وقت در مقایسه با علم خدا حالا من علم خدا رو دو عبارت ازش بگم مثل چیه در رابط با علم خدا چی باید گفت سلو مورکان اعنا آمای و نو و اندهو مفاتحالغایب کلیده های آگاهی از غیب نزد خداست لا یعلمها الا هو و از غیب جزو کسی آگاهی ندارد آینشتن و صد میلیون میستعنشتن افق فکریشون در جهان شهود است و نه در جهان غیب در جهان غیب کسی راه نمی‌داند این بنده خدا در عالم فیزیک حرف میزنن در متافیزیک که حرفی برای گفتن ندارن تازه در عالم فیزیک میگم ما چند پله بچه بالا نرفتیم ولی قرآن میگه و اند دخو مفاوت خلقای آقا از متافیزیک دست خداست ولی علماء الله و جزو او کسی رو نمیدانه چقدر خوشگل و یه علماء فلبر و بحر در خشکی و دریا هر چ hast میداند و ما تسقط و من ورقه الا یعلمها هیچ برگ درخت نیست که بر زمین میافتد مگر این که آن میداند ولا رتب ولا يابس هیچ رتب و یابس یعنی هیچ پدیده ای وجود ندارد الا فی کتاب مبین مگر اینکه در کتاب الهی روشنه روشنه یعنی چی؟ ببینید ها پدیده عالم فیزیک برای دانشمندان روشن نیست چرا روشن نیست؟ گفتین چه تغییر پیدا میکنه عالم فیزیک هم فیزیک می منای اهمش دارم نیگم عالم طبیعت رو دارم نیگم و یک زمان این گفتن مثلا فرض بفهمه که زمین مرکزه حالا میگن خورشید مرکزه هیچ استبعادی وجود ندارد که چی؟ چند سباه دیگه آن نخ زمین نخ بلکه زهره هستن وسط مرکزه هیچ استبعادی وجود نداره به همین دلیل علم دارن ولی علمشون علم روشن نیست اما خداون میفهمد. لا رتم ولا هیچ حدیده اینست الا فی کتاب ممین بگرین این که روبشنه یعنی لا یتغیر ولا یتبدر خب برای چنین علمی جز الله و اکبر چیز دیگه میشه گفت الله اکبر به هاوز و به هاوز این علم چیه در متافیزیک جهان غیب جهان غیب بازی نیستش که با نر بکیوی احبا بشه در آورد. بود لای الله او میداند البته این به این معنا نیست که اعمه یا انبیانه میداند چون او میداند و به کسی که بخواهد در اختیار می گذارد. این اتحاد ماست آهای من امیر المومنین در خطبه 183 نهجال بلاغه بیان نورانیشون اینه الحمدللله هم دو ستایش برای اون خدای آنشنانه ای که یعلم و عجیج آواید درندگان را میداند عجیج الوحوش فلد درندگان در بیابان آوایشان را میداند و معاصی العباد فل خلوات گناه بندگان در خلوتگاهاشون رو میدونه و اختلاف نیان فلبهار آمد و بهار القامرات آمد و شد ماهی ها رو در دریاهای ژرف و عمیق می‌ذانند و طلا الما به العاصفات تراتم امواج آب آم رو با وزش تون با باد ها می‌دانند این علم خداست نمونه ایشه خلوت رو میدونه دور دست رو میدونه جامد رو میدونه یعنی باد و طلاطم آبها این شیوه علم خداست همه را میداند اینو فقط بگو الله. برای چی داریم شو ما بخوایم راجع ببینیم چه علمی صحبت بکنیم که شتانه بین علم بشر و علم خالق بشر خب حالا بریم سراغ علم خدا اولا علم و تعریف کنید تو بینو علم خدا چیه بازی وحث فلسفی کچول روه خب وقتی میخوای علم رو تعریف بکنی علم یک مقوله است که در مقام تعریفش باید یه جمله بید علم میشه مجهول شما اون چیزی که در مقام تعریف میاد میشه تعریف شما اون مجهول اسمش معرفه اون چیزی که در مقام تعریف میاد اسمش چیه؟ معرفه میگن عزتالی معرف، اون شیح هستی بعد دیگرم معرف باید اجلا باشد ظاهرتر باشد ازهر باشد اجلا باشد روشنتر باشد از چی؟ از معرف وقتی مثلا فرض کنید به شما میگن خدا رو تعریف کنید خب قدیمی ها در فلسفه مثلا طبیعت قدیم نفتن خدا استغوثی فوق استغوث هاست خود این استغوث جهل داره خود رو میخونی خود یعنی چیسته مثلا استغوث چیه خب چیزی که تو میخوای در مقام تعریف بیاری چیزی را که میخوایم در مقام تعریف بیاریم باید از اون چیزی که بخوایم تعریف کنیم چی باشه؟ مشهورتر باشه استقصی فوق استقصی ها خدا داری دالا می پرزده میگارو چیگه وضعه این قاعده منطقی در تعریفه حالا بر اساس این قاعده منطقی در تعریف که معرف باید اجلا باشد باید ازهر باشد باید اعرف باشد از معرف حالا شما چه علم را از مقوله ماهیت بدانید؟ مثل اکثر فراسفه و چه علم را از مقوله وجود بدانید؟ مثل جناب از بزرغتون صدر باز نمیتونید برای علم تعریف بکنید. چرا؟ ماهیتش بدونید با یک کلماتی رو بیارید. خب چه کلمه ای روشن در از خود علم؟ یک کلمه رو بیدید که روشندتر از علم باشه در مقام تعریف الفاظ رو باید استخدام بکنید که از معرف چی باشه؟ اجلا باشه خب یک کلمه بیدید که از مع... از علم آشداتر باشه دیگه اصلا امکان نداره این زمانی است که شما مثل اکثر فلاسفه علم رو از مقوله ماهیت بدونید ولی مثل, ابلسی... مثل صدرابوتا علی این که علم رو از مقوله وجود بدونه و حرف درستم حرف ایشانه خب شما وقتی این از سنخ وجود شد من به شما میگم وجود رو تعریف کنید نمیتونید چون بدیهیه لذا علم در مقام تعریفش میگن تعریف بردار نیست چون بدیهی است. یه دیگه اصلا امکان نداره تعریفش بکنید اصلا امکان تعریف وجود نداره چرا امکان تعریف وجود نداره؟ به خاطر که چه ماهیتی باشید یعنی علم رو از ماهیت بدونید. معرف باید اجلای از معرف باشه و هیچ چیزی آشناتر از علم برای خود آدم نیست. و اگر وجودی باشید، یعنی در موقع رو از سندخ وجود بدونید. خود وجود رو نگوشت کرد. عرف الحقائقه، اشیا بدیگی، عبده الحقائقه. رزا تعریف بردار نیست. علم نمیستری که یه دیگه هم گفتن علم معنی یقینه. خب این ها اشتباه کردن گفتن علم معنی یقینه. اگر علم معنی یقین باشه بسیاری از دانشهای ما یقینین بنابرای علم نیست. خیلی از دانشهای ما و معلومات ما یقینی نیست. شما بگه به گمانم بنابرای علم برش وجود نداره. مضافان که اصلا علم ما را ممکن است به یقین برساند. نه اینکه که علم خودش یقینه علم ممکن از ما را به یقین برسان پس تعریفی هم کرد های غلطیه اصلا علم خودش یه مقوله ایست یا بله یه مقوله ایست بی از تعریف چرا چون وجدانیست درونیه شما حالت گرستگی تو میتونی تعریف بکنی یا نمیتونی تعریف بکنی بله برای بچه تعریف کردی آها وقتی به یه جایی رسیدی این یعنی گستگی اینو گفتی تالاشه تا نگفتی ولی خودش گستگی رو چیکار میکنه ؟ میاد مثلا بچه دو سالش رو میون گشتم حالا اگه زبانم نداشته باشه شروع بکن بهگره کرده چرا چون اون حالت حالت چیه درونی و وجدانیه. علمم همینطوره درونی و وجدانیه. اصلا حالات انسان درونی و وجدانی هستن وجدانی یعنی یافتنی نه وجدان اخلاقا وجدان اخلاق فری نداری فعله کات کنید وجدان اخلاق از درون باید بهش برسید یافتن یافتن شما وقتی با بچه صحبت میکنین میگیم میدونیم یاره داره که اصلا نمیدونه معنای دونستن چی اصلا نمیدونه علم یعنی چی وقتی میگید میدونید میگیم یاره میدونن در حالی که معنای علم رو نخونده چرا شما از درون دریافت میکنه ایداره همه گفتم که بهتون بگیم که آقا علم نیاز به تعریف نداره. بنابراین ما اگه بخوایم راجع به علم خدا صحبت کنیم راجع به علمش تعریف نمیاریم. ولی ویژگی های علمشون نداریم. علم خدا دارای ویژگی است. این رو بقدمه قرار میدیم برای اون که بخوایم بگیم بابا علم خدا سه مرتبه داره. و از اهل خدا این سمت تвар اگر شما متوجه بشی 800 80 درصد نهاد درصد مشکلات غزاعا در علی این سمت توار متوجه بشی لذا دقیقا ویجیها اهل به خدا هم یک خداوند عالم به همه اشیاه هست به همه چیز آلمه ما من حقیقت الا این که ولهو اندالله علم علم اون حقیقت نزد خداوند و همه چیه علم داره آیاتی که این معنا رو اثبات میکنن و بیان میکنن ما اثباتش رو از کجا در آوردیم آقا اون دو دلیل اون دو دلیل و اون اون وین کمالات متصور اگر نباشه اون ذات مشکل پیدا کنید یا واجب الوجود نیست یا واجب الوجود نیست یا اگر بخواید بگید که اون علت نمیتواند اینها رو داشته باشه درش در واقع ترجیح بلا مرجعه و ترجیح مرجو پیش میاد هر مخلوقی که خلق شده علمش نزد خداوند داره و آیاتش گوش بکنید سوره مبارکه انفال آیه 75 ان الله به کل علیم خدا به هر چیزی داناست سوره مبارکه تاها آیه 98 انما اله الله این اصل جزی نیست معبود شما الله هست الزی اون الله ای که لا اله معبودی نیست الا هو مگر او وسعه کل شیء علما که جز او خدا این او همه چیز را به دانشش فرا گرفته این وسعه کل شیء علما احاطه علمی ازت حقه همه چیز در علم خدا قرار گرفته همه چیز آیه اینو گفتیم کدوم آیه هست؟ تاها نمداش آیه سه آل امران بیست و نه قل انتخفو ما فی صدوركم او تو بدوهو بگو آن اگر آن را که در سینه هست پنهان کنید یا آشکارش کنید یا علم هلا خداوند او را میداند مخفی و آشکار شما را میداند و یعلا و معافل سمامات و معافل از و اون در آسمان ها و زمین است میداند به همه مخلوقات نه فقط انسان سه سوری مبارکه تها سه و انتج حرف القول به احبه این اصلا چه آیه یه و انتج حرف القول فانه انهو یعلم و و اگر گفتار را آشکار کنین پس شان چنین است که او راز را و اخفا و مخفیتر از آن را میداند راز و مخفیتر از راز راز اون چیزی است که بیان نشده اینو میدونه یک پنهانتر از راز رو را هم میدونه پنهان از, را می از راز چیه؟ نیت اون رازه چون شما قبل از یه گفتارت یک چیزی تو ذهنت داری که داری حرفو میزنه دیگه درسته؟ اینی که تو سینه نگه داشتی که میگه میدونم اون اون نیتی رو هم که اون, چی... اون نیت اون چیزی رو هم که تو سینه نگه داشتی مخفیتره دیگه این رو هم میدونه وقتا چی قابل که جلو خدا میخوای جلو خدا مثلا چه ها آکروبات بازی بخوایی در بیاری؟ چگاه میشه کرد؟ نیت راز ما را هم میدونه بعد من میرم میگم الهی الهف بعد در احماق وجودم سر خدا کلا بذارم آسرش کلا میره یکه حالا میگیم الهی الهف تو حاجت ما رو بده بعد دوباره روز از اون روزی از <تصفيق> این میشه اون نیت اون چیزی که شما تو ذهنت نگه داشتی و در خارج داری چیزی دیگه ابراز بکنیم چون یکی از شرایط اجابت دعا توبه کردنه خب تو توبه میکنی الهی الهف الهی الاف، الهف الاف. پس این توبه اینه که خدای تو حاجت ما رو بده ما دوباره شروع میکنیم و با ذکر نمیکنی درسته؟ و پس اون چیزی که ذکر نمیکنی یه نیتی وجود داره همه شما میکنه آه تو بخواه با این خدا بگی چرا راجعت من نمیدی؟ ها نمیشه دیگه جلو قاضی و من لقاضی خلاصه اونم که چه باید سر قاضر قضاعت باشه من که خیلی دوست دارم این آیارا. یعنی به زعف خودم خیلی پی برم چقدر ما موجودات ضعیفی هستیم و حالا این بماند که ایشالا آیات بعدی رو هم بخونیم چون این متا چشمم یاری نمی کنه. حقیقتش دید که برام سهده خونده شد این علم از مقوله است که تعریف بردار نیست وجدانیست به درون باید بپردازیم علم از کمالات از اثباتش اجمالا به اون رو دلیلی که گفتیم علم خدا رو اگر نمیتوانیم تعریف بکنیم ولی ویژگی هاش رو چکار بکنیم؟ بیان میکنیم اولین ویژگی علم خداون این است که به همه چیز عالم است.